الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حبود ولا قوت الا بالله العلي العظیم و الله اللہ نبینا خاتم نبیین محمد و آدهی اتمین بحث ما راجب توحید یک تا پرستان بود که من دارم می نویسم الله از خدا می که کامل بشه و این کتابش در بیاد ما یک سیر من الخلق الالحق داریم که حرکت ما از عالم خلق به سوی حق تعالی بعد وقتی که رسیدیم به اثبات مبلع و خدای تعالی رو اجمالا شناختیم یک سیر من الحق الالحق داریم از خدا به خدا یعنی بحث صفات خدا صفات ذاتی است که صفات سیر از خدا به خدا یک سیر از خلق به خدا که اثبات خداست یکی سیر از خدا به خدا یکی سیر, سیر از خدا به خلق قوس نزول یه قوس صعود داریم از خلق به خدا یک قوس نزول داریم از خدا به خلق یعنی کیفیت آفرینش که چطور مخلوقات آفرید مدخلیات قواعد کلی داره که قرآن گفته مثل گفتن نما امره و اذا اراذ شیئا ينقل کن كن اون از حق به خلقه سیر نزولیه سیر سعودی قوس سود، از این طرف پس منابعین ما در قضیه الهیات سه تا سیر داریم که تو این سه سیر هستیم الان در سیر دومی هستیم من الحق الالحق از خدا به خدا یعنی بحث سپاد خدا و اینجور امور که الهیات معنای اخص در فلسفه اسمش رو گذاشتم در این مقام ارز کنم که ما اولی یه نکتری رو بگم یعنی یه سیر پایینتر رو بگم برسیم به اون سیر که گفتیم یه بحث کردیم یکی از مشکلاتی که برای بسیاری از مردم هست تصور کردن که مخصوصا کسانی که مادی هستند قوانین عالم رو جای نشینه خدا کردن وقتی بهشون بگیم که این خلقت و این نظام از کجا پیدا شده شروع میکنن یه سلسل قانون های خلقت رو میگن جاذبه دافع دیگر قوانینی که در عالم هست اون فیزیک که پارسال مرد و گفتش که من میتونم تمام عالم رو تحلیل بکنم با همون قوانین قوانین فیزیکی شیمی شیمیایی احتیاج به خدا ندارم. اون بر همین مبنا بود برای آدم مادی به که این جهان چجوری پیدا شده این موجودات چجوری پیدا شدن فوری شروع میکنه قوانین فیزیکی و شیمیایی رو میگه داستان اینها مثل منی که مثلا قدم به دست گرفته. شما نگاه میکنی میبینی قلم داره مینویسه پرس کن خود من نامرئیم شما مؤثر رو در نگارش قلم میدونی چون منو که نمیبینی در حالی که قلم در دست منه منم که به قلم فرمان میدم قلم وسیله نگارشه مؤثر واقعی اون نیست دست منم مؤثر واقعی نیست اراده من علم من اونا هستند که امر میکنن به دست من دست من مینویسه و منو فرض کنید که دارم مینویسم بعد خودم محب بشم یعنی کسی من رو نبینه همه قلمه رو میبینن دیگه قلمه اینا داستانشون این این قوانین میبینن این قوانین به اراده کی تنظیم شده ببینید قوانین به طور مطلق نمی‌تونن کار بکنن تا اینا رو تنظیم بکنن دو شیع رو به اندازه هم متناسب با هم با هم روبرو کردن تا بین اینا مبادله انجام بشه جازه با اضافه کم میشن زیاد میشن منحرف میشن تغییر میکنن مسیرشون عوض میشه پس اینا باید تنظیم بشن قوانین عالم باید تنظیم بشه قوانین متناسب با مواد هستن اگر زمین جاذبه به استلام حجمش کمتر از این بود نزدیکتر به خورشید میشد دیگه زندگی نمیتونستیم بکنیم از حرارت اینا اگر حجمش فرض کنید که زیادتر بود جاذبه خورشید روش تاثیر کمتر میذاشت تمام یخبندون می شود سرد زیاد می شود نمی ترستیم با زندگی بکنیم در یک شرایط، اگه زمین حرکت نمی کرد همشلو خورشید بودیم کباب می شدیم به تدریف هی حرارست زیادتر می شود پس این قوانین با حجم با روبرو شدن مواد با هم با اندازه دادن طرح دادن تازه این قوانین تأثیر درست می زارن. قوانین از خودشون مستقل نیستن. یه چیزی جدا از عالم طبیعت نیستن که بیان طبیعتی بسازن. پس اون دستی که این مواد رو تنظیم کرده مغزار بشون داده جل نال کل شای انحدا برای هر چیزی هر دو اندازه قرار داده اون باید فوق قوانین عمل کرده باشه. داستانش داستان منه که وقتی قدم دست یک قدم نوشت بعد میگی نه دسته که نمیش بعد میگی نه اراده و علمه که فوق این هاست که دستور میده تو این عالم داستان اینطوریه قوانین که عمل میکنن به امر اون نیروی است که این قوانین رو تنزیم کرده فرمان داده و اونم مربوط به اراده شه و مربوط به علم شه با ذات کاری نمیکنه با اراده و علم انما امره او اراده شيئا ان يقول له كن یعنی ذاتش حلول در اشیاء نمیکنه ارادهشه که حاکمیت داره अरे اره. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت تویی عین ظلال است اراده الهی تعلق میگیره مواد تنظیم میشن قوانین به کار میافتند تا حاصلی پدید بیاد محصولی پدید اینه که اون پزیکدان چسبیدیده به همون دسته که داره می یعنی گه قوانین عالم به که این عالم رو کرده. نمیبینه که پشت سر این دست نویسنده ای هست ارااد ای هست تو عالم هم اینطوریه اون قدرت نامحجول و غایت نهاست که به با عالم داره این قوانین رو تنظیم کرده اینطور. ولی خود شون قبول دارن یه روز این مؤثر نبودن به کار نمو که مهبانگ یعنی تازه میخواسته شروع بشه این نظام نبود این قوانین نبود این ترها متناسب با هم روبرو شده بودن با هم اون نه دهنده جهانه که این کارو کرد در نتی این قوانین مؤثر واقع شد. خب پس ما حالا یه بحث اینه که از خلق به حق سپر کردیم میریم میرسیم به اون قدرت الهیتناها که نظام رو در آلم پدیده بریم حالا از اونجا به خودش سفر میکنیم من الحق الالحق یعنی چی؟ یعنی میبینیم سفات اون چیه؟ چند جور سفت داره؟ سفت ذات چیه؟ سفت فیل چیه؟ اسما خدا چیه؟ سفات خدا چیه؟ این مباحثی که الهیات به بالمعنه الاخست میگن آیا اون واحده؟ آیا اون کسیره؟ وحدت و کسره؟ یعنی توحید ذات حالا هنوز توحید از کنم که سپات و توحید عبودیت و توحید و افعال رو اینا نرسیدیم اونا حالا بحث خواهیم کرد ما قبل از این که اونجا راجع به صفتی بحث کنیم باید راجع به خود ذات بحث کنیم که آیا ذات واحده یا کثیر. همیشه این مفهوم ها رو اول باید تحلیل کرد بعد تطبیق داد اول تحلیل بعد تطبیق چه باعث میشه یه چیزی کسیر بشه؟ محدودیت این تموم میشه یکی دیگه شروع میشه محدودیته که مایه کسلت میشه و اله یه چیزی تمومی نداره جان نمیزنه واسه دوبومی هرچی بریم خودشه محدودیته که کسلت ایجاد میبه شما میگید دوتا آب ولی که این آب تو استخر شماست اون آب تو استخر منه اینا محدودن هر کدوم و اگه این استقرار رو برداریم این متصل بشه و هم یکی میشه دریاه ها اگه واسطشون رو برداریم یعنی اونچه که اینا رو محدود کرده برداریم همه یکی میشن زمان مکان ماه کسرته میگی فلان کس اینطوری کرد بعد فلان کس اونطوری کرد اینا دو نفر هستن برای اینکه در دو زمان بودن در دو مکان بودن بله پس زمان و مکانه که محدودیت ایجاد میکنه کسرت پیدا میشه حالا مبدعی که خالق زمان و مکانه در ذات او دیگه مکان راه نداره او بوده و مکانی نبوده او بوده و زمانی نبوده بنابراین اون در وحدت صرفه و او بی نهایته هیچ چیزی او رو محدود نکرده بهترین دلیل توحید خدایتار توحید ذاتی همین که ما موضوع کسرت اول تحلیل عقلی بکنیم میدونستین کسرت چرا پیدا میشه تعدد چرا پیدا میشه چرا دو دوتا خدا برای اینکه که بینشون فاصله میذاریم اینا رو از هم جدا میکنیم به اینا اتقام در هم میشن یکی میشن صد هزار تام اگه تصور بکنی بینشون هیچ فاصله زمانی و مکانی و رنگ و شکل و مقدار و اینا کمه مخلوق در ذات او نباشه اونا یکی هستند روسته بعد ما این جهان رو یک جهان متصل میبینیم زمین با آسمان کرات ما با کرات منظوم شمسی یه جهانه و شون یه جهانه یک خدام داره یک آلم و یک خالق قرآن کریم به این موضوع اشاره کرده گفته که اگر خداوند شریکانی داشت لذهب کل و الهین به ما خلق هر معلولی تابع علت خودشه هر مخلوقی تابع خالق خودشه اگر چند تا خالق بودن چند تا آلم بودن هر عالمی تابه خالق خودش بود این از هم جدا بودم ولی ما تو این یک عالم واحد داریم زندگی می کنیم. یک جهانه متصل به هر حال ما در سیر من الحق الالخلق به وحدت ذات می رسیم. یک ذات است. وقتی که یک ذات نامتناهیه بحث صفات حل میشه چرا؟ الان سخت بین اهل سنت اشعری ها دیعیان معتزلی ها بعد سلفی ها همه اختلاف اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر این است که یه دسته ای میگن سفات خدا با خداست ولی غیر از ذاتشه میگن سفت خدا زائده بر ذاتشه یه دسته ای میگن سپات خدا این ذاتشه درسته اون دسته که میگن سپات خدا زائد بر ذاتشونه ذاتشه دلیلشون نینه میگن علم غیر از قدرته قدرت غیر از رحمته رحمت غیر از کرمه خب این ها سپات مختلفن ذات که ذات واحد بیش نیست پس این سپات مختلفه همراه ذاته خدا قدرت داره قدرتش خیلی از علمشه علم داره علمش خیلی از رحمتشه رحمت داره خیلی از صفت دیگهشه این دسته که معتزلی های اهل سنت باشن و دیگران اینا میگن که عجب مسیحی ها به سه اقنم قائلن ابو ابن روح القدس شما میگی مشرکن شما که آمدی به عدل سفات خدا اغنوم قائل شدی خدا یه ذات داره یه سفت علم مستقل یه سفت قدرت مستقل یه سفت کرم مستقل یه سفت رحمت مستقل و همیتون ساعتها اغنوم در ذات خدا درست کردی یک موجود مرکب درست کردی ترکیب دهنده این کی بوده کی این اینطوری ساخته اونا میگن نه شما نفات سفات هستید یعنی نفی میکنید سفات خدا رو اینا میگن نه ما نفی نمی کنیم ما میگیم هم علم داره هم قدرت میگه خب ناتاری بگه علمش قیلی از قدرتشه قدرتش قیلی از کرمشه همون حرف ما میشه اینجا یه قاعده آمده که اون قاعده ثابت میکنه که سفات خدا به طور وحدت در ذات خدا هست نه به طور متفرق و کسر هست اون قاعده اینه مثال اول بزنم آقا شما عدد بی نهایت یه عدده ولی توش هزارم هست بله صدم هست بله دیویست هست بله یه دیون هم هست بله یک عدده ولی همه اعزاد توش هست خدا یک ذات بسیط لایتناهیست که تمام مراتب وجود اونجا هست هم علم هست هم گوش در این حال یکیست بس بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی سبش هی امنها یک حقیقت واحد لا شما قبلا گفتیم تعدد از محدودیت ایجاد میشه ذات خدا بی نهایته بس تمام کمالات در این وحدت و در او هست این است که علماء اسلام پس از سالها تلاش و کوشش کشف کردن پیدا کردند مسیحیت نتونسته به این برسه هی اغنم سازی کرده در زاد فلاسپه شون نتونستن حتی برسن نه جای عادی و پرنه و این در آثار اهل بیت علیه مسلم آمده همون خطبه اول نحجال بلاغر رو ببینیم ی اول الدین معرفتو و کمال و معرفته و معرفته به تامیرس اونجا و کمال و تسلیق نفی صفات ذذ ولت کل صفات غیر الموصوف و کل موصوف غیر الصفه پمن بسف الله سبحانه فقط اددا کسی که خدا رو با صفات زائد بر ذات بکنه تعداد قائل شده اغنم های مختلف در خدا سفات خدا این ذات خداست نه لازمه ذات اون خطفه اول نهجل بلاغه این قضیه رو مفصل گفته خیلی قابلی آقا 1400 سال پیش قبل از اینکه فلاسفی به این فکر برسن قبل از اینکه ملسلله ها پیدا بشن ابن سینه ها زهر بمیشن علی گفته اینا رو علی از کی گفته علمانی رسول الله رسول خدا منم به همین جهت بعضی استدلال کردن به اینکه که هو الله احد این احدیت هویت خدا این احدیتشه در او ترکیب نیست در او از این آیات خواستن استدلال بکنه اونتا این مسئله سنگین تر از اون است که تو ذهن همه عوام بشینه نزا قرآن که صحف کرده قضیه رو گفته تنزیله من به انزه فهمه تو باید حرف زدم برات نه به خدای خودم تنزیل من الله العزیز الحکیم اینو پایین آوردم تا تو بفهمی کتاب عمومی است فقط داری فلاسبه نگفتم از این جهاز قرآن این مباحث رو به کنایه به اشاره خلقه کلشه ای فقدره او تقدیله همه چیز رو آفرید اندازه داد یعنی من که این کارو کردم بیرون از اندازم من نامتناهیم اگه همه درخت های زمین قلم بشن هفت دریا و مرکب بشه سخنانوان تمام نمیشه یعنی علم من بی نهایته تو بی نهایت عرب بیابونی نمیتونسته بفهمه عدل بی بعد در ریاضیات کش شده اوه سابقین هم باز درک نکرده بعد ها کرف کرده قرآن عدد بی نهایتو گفته گفته علم من مساویست نسبت به کسی که تو تاریکی قایم بشه یا تو شاه آفتاب قدم مساوی مساویه نه اینکه به هر دو علم دارم سوا اون من کم من اثر الگول و من جهر به و من هو مستخفن باللیل و صار بن بالنهار مساویست کسی که یواش سری صحبت بکنه و کسی فریاد بزنی نظران مساویه نمیگه من میشنبم میگه مساویه این مهمه سمه خدا اینه هرچی ما به بعض براده بابا سمه خدا با شما فرق داره شما تر بگن کمتر میشنگی داد بزنن بیشتر میشنگی خدا سمهش به کلی فرق داره با این مطفده نشدی دستان سمه خدا اذا ثواب توی استفاضه خدا رو منکری میگه خدا از بلده کره چه برداشت مزخرفی از هر پای من دارن و اه بعض اهل سنن هر پار و بابا اینا تر از اینی که شما بتونید بفهمین من نمیخوام با خودم ببالم اینا مطالبی است که در لابلا بلای کتاب و سنت آمده. علی گفته تو نجل بلاغه بازش کرده و هر حال ما سیرمون من الحق الى الحق بحث در سپاس خداست پس خداوند متعال یک وحدت حقه، حقیقیه اطلاقی است که بی و همه از که مراتب وجودی کمالات در ذات او به طور وحدت و یگانگی هست بدون که اغنم سازه بکنیم زاد خدا رو هی تقسیم بکنیم به صدها اقنوم به عدد اسماع حسنا و سپاس اولیاش نه قل هو الله احد مقام احدیته که گفتن غیر از مقام واحدیته قل هو الله و احد البته به یه آیه هم استلال کردن به نظر من استلالشون خیلی قوی نیست چون آیه معنی خاصی داره خواستن همینو بگن و من شيء الا عندنا خزائنه هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش اصلش اگه تو این عالم شما علم هست خزائنش اینجاست اگه قدرت هست خزائنش نزد ماست اگه رحمت هست و ما ننزله الا بقدر معلوم ما تو این عالم نازل کردیم از ان پزائل به اندازه معین دریای علم اینجاست دریای قدرت اینجاست دریای رحمت اینجاست سوره حجره اما حالا در مقام تفسیر نیستم یه تفسیری دیگه با توجه به سیاق داره که خیلی این قضیه اونجا ولی مفهوم درسته این مفهوم درسته اونجا اگه علم نبود اینجا علم پیدا نمی‌شد اونجا اگه قدرت نبود اینجا قدرت پیدا نمی‌شد اونجا اگه رحمت نبود اینجا رحمت به نمی‌رسید. اینا فرعه، پر تابع اصل شؤاخ خورشید داخل به اصل خورشید باید برگرده. اونجا همین حرف‌ها هست که اینجا آمده. و اینجا تنزیل شده، اینجا محدود شده، اینجا تغییر شکل پیدا کرده که اومده. لزلیسا کمسریش. اونجا در وحدت، اینجا در کسلت از وحدت به کثرت عالم خلق. عالم حق در وحدت این عالم خلق عالم کثرت بعد بعد همون سپات ذاتیه سپات فعل هم داره تنها سپات ذات نیست خداوند همیشه خالق بوده پس عالم قدیمه یه وقتی خدا خالق نبوده یعنی خلق نکرده بود چیزی ولی قدرت در خلق همیشه داشته پس قدرت صفت ذاتیه خود خلق خلاقیت صفت پیله گاهی هست گاهی نیست درسته رزاقیت چجور وقتی خلق نیجاد ایجاد نکرده روزیم بهشون نداره پس همیشه رزاق بوده قدرت و رزابیت همیشه داشته ولی وقتی خلق نکرده که امات و احیاتی میراندن و زنده کردن و اینا همیشه در خدا قدرتش بوده ولی خود میراندن و زنده کردن فعلش حادثه یه وقتی قرار نکردن نمیرانده اونا رو نزنده کرد اینا رو بهشون میگن صفات فعل مهی و ممید سفت ازلی خدای تعالی نیست ولی پشت سر هر سپت فعلی یه قدرتی خابیده که بر اون کار همیشه توانایی داشته حالا رو مسئله خودش نکرده درست؟ بنابراین نقص در ذات است این سپت فعل تا شما میگی سپت خدا بعد پرسید سپت فعله یا سپت ذاته سپت خدا این ذات خدا هستن کدوم سپت؟ صفت ذاتیه نه هات فعلیه صفات فعلیه یه نسبتی است که بعد از انجام فعل با به خدا میدهیم بعضی که خلق میکنیم میگیم خالق حالا همیشه خلق کرده پس اول عالم قدیم باشه هم از خدا ازلی باشه ولی عالم حادثه دلایل قوی داریم اگر عالم ازلی بود تا حالا بی نهایت عمر کرده بود بیشتر از بی‌نهایت که دیگه نمیشد عمر بکنه پس چقدر عمر میکنه یعنی جلو هر سال دیگه پروانه نمی‌آد هی می هم. پس عالم عمرش محدود که قابل افزایشه بی‌نهایت یعنی دیگه اونچه که لازم و باید داره قابل افزایش نیست ولی آدم نه در کاستیه یک ذره عمرش زیاد میشه تا برسیم به قیامت هی داره جلوم پس این عالم آغاز داره که قابل افضایش عمرش پس یه وقتی نبوده شروع شده حالا عمرم علمم رفته سر بیگ بانگ و اینم در واقع میخواد بگیه وقتی آدم نبوده به این صورت اما صحبت بر سر اینه که اون وقتی جهان نبوده خدا خالق نبوده ولی عالم بوده قادر بوده خالق وقتی هست که خلق بکنه ولی قدرت بر خلق داشته, داشته علمش هم داشته سفات ذاتی تکن نمیخوره سفت فعله که تغییرات درش حاصل میشه حالا هدایت سفت ذاتی یا سفت فعل؟ دیگه یه <تصف> <تصف> <تصف> وقتی من شما رو خلق نکردم هدایت منم نکرده درسته؟ بله هدایتگری، رزاقیت، خالقیت اینا صفات افعاله اینا رو باید جلو کرد بقیه ان شاء الله واسه بعد سلام الله علیه